یکی سواله مهمی که مطرح میشه و من هم زیاد میبینم بین کسایی که تازه افتادن به تب به تاب و یادگیری اثرگذاری و اینها این هست که میگن بهترین تکنیک هیپنوتیزمی چیه؟ یه تکنیک فوق‌العاده میخوام یاد بگیرم، یه تکنیک فوق‌العاده از فلان جا خوندم و حتی سعی میکنن اجراش کنن، خیلی جاها سعی میکنن به بقیه یادش بدن و فکر میکنن این تکنیک ها خیلی جالب و جذاب و اثرگذارن و من خام یه تذکری رو به شما عزیزان بدم به همه شما اعضای عزیز کلاس هیپنوتیزم بدم و اینه که فکر نکنید بهترین تکنیکای هیپنوتیزم و خاص‌ترینشون اونایین که خیلی عجیب غریبن و پیشرفتهن و اصن وقتی میشنویدش خیلی ویژه‌ به نظر میان بلکه اتفاقا عمیق‌ترین و عجیب‌ترین تکنیکای هیپنوتیزم اونهایی هستن که اصلا به نظر نمیان یه تکنیک باشن یعنی خیلی اوقات اثرگذارترین افرادی که در طول تاریخ بودن، اثرگذارترین ارتباطاتی که در طول تاریخ رخ دادن، میان دو نفر یا میان یک فرد و یک کشور، مردم و یک کشور به اون اونهایی بودن که اصلا چرا اگه شما صد بار هم گوشش کنید میگید این یه ارتباط عادیه، این ارتباطیه که اصلا توش تکنیکی به نظر نمیاد وجود داشته باشه و در واقع خیلی از افراد، خیلی ها، خیلی از اساتیدی که دارن اثرگذاری و اینها رو یاد میدن اونقدر این رو پیچیده و متفاوتش میکنن و اونقدر مصنوعیش میکنن که شما حتی وقتی دارید آموزش اون فرد رو میشنوید یا طرز استفاده کسایی که این تکنیک رو یاد گرفتن رو میشنوید و میبینید یه ذره همه چی مصنوعی همه چی زننده‌س حتی یعنی شما حس که یه نفر داره سیاستی رو به کار میبره حالا چه برای اثرگذاری روی جنس مخالف چه برای یه معامله تجاری چون در حال حاضر اساتید زیادی هستند که واقعا آموزش میدن اینها رو و میگن تکنیک ها هیپنوتیزمیه، هیپنوتیزم گفتاریه ولی در واقع باید آگاه شید که هیپنوتیزم ترین تکنیک اون تکنیکیه که اصلا نشه تشخیصش داد که اصلا تکنیکی به کار برده شده. بنابراین حتما این رو مد نظر داشته باشید و اگه حتی مهارت خیلی خاصی رو دارید یاد میگیری چه در این کلاس در جای دیگه دقت کنید ببینید چطور میتونید اون رو نامحسوس و عادیش کنید یعنی نه لازم باشه تون صداتون خیلی تابلو بشه نه اصلا چیزی اون وسط احساس بشه و زمانی که شما بتونید در واقع بدون اینکه بخواید تکنیکی رو به کار ببرید عملا وجودتون رفتارهاتون هیبنوتیزمی بشه اون موقع شما بزرگترین استاد هیپنوتیزم شدید